که مدرسه قرار شد مدرسه را رأس ساعت نه شب ترک کنیم وقت زیادی نداشتیم بچه ها دیوان وار به جمع و بستن وسایل خود پرداختند کجا باید می رفتیم؟ چرا باید می رفتیم؟ زیرا دشمن نزدیک شده بود دشمن کجا بود؟ آن را هم نمیدانستیم. ولی به هر حال از صدای توب فاصله آنها را حدس می زدیم. هیاهوی جنگ تا حد زیادی کاهش یافته بود ولی هر گلولهی که شلیک می شد آن واضحتر و نزدیک از قبل به گوش می رسید. در واقع دشمن نزدیک بود. اسیر آمریکایی هم دلیل دیگری بر این مدعا بود. اثر ناگهانی فرمان ترک مدرسه مانع درک این واقعیت بود که جنگ به داخل خاک آلمان کشیده شده است. افکار فقط بر خروج اجباری از مدرسه متمرکز شده بود. فرمانده که از جلسه توجیهی برگشته بود اعلام کرد که حرکت تحت فرماندهی سرگرد خواهد بود. آقای کلاسنر و بیشتر کادر آموزشی قبلا برای شناسایی و گشتزنی مدرسه را ترک کرده بودند. افراد بالاتر از چهارده سال که قرار بود خود را به لشکر دوازده احتیاط اسم معرفی کنند، میبایست همراه با بلژیکی ها در مدرسه بمانند من پرسیدم ما به کجا رویم؟ فرمانده ی گروه گفت خودم هم نمیدانم کار جمعوری و بسته را ادامه دادیم نگاهی به بار و ی افراد جوخم انداختم متاسفانه ناچار بودم به آنها بگویم وسایل خود را باز کنند بارشان را سبک کنند و اشیای غیر ضروری را دور بریزند بیشتر بچه‌ها پشتی های خود را از کتاب و وسایل شخصی و حتی از پاپ بازی پر کرده بودند. در سالن غذاخوری که کنسرو و نان توضیح می می‌کردند، به بچه‌ها توصیه کردند تا آنجا که می‌توانند برای خودشان بردارند. راه های راه مدرسه پر از سربازانی بود که می‌آمدند و می‌رفتند. تجهیزات، مسلسل، تفنگ، بازوکا و جعبه‌های مهمات روی زمین ولو چند سرباز مشغول درآوردن آوردن پنجره ها و پر کردن آن با کیسه های شن بودند. این وز تا موقعی که تاریکی همه جا را فرا گرفت ادامه داشت. برقهت شده بود و غیر از روشنایی گاه به گاه نورفکنها مدرسه به طور مطلق تاریک بود. به همین خاطر هر کس وظیفه خود را در کوتاهترین زمان انجام می داد. کلپشتی های ما حاضر و آماده در راه کنار دیوار چیده شده بود. روی هر کوله پشتی صفتی که داخل برزنت پیچیده شده بود و روی آن کلاه خود خود را گذاشته بودیم و هر کدام هم بیل کوچکی به کمربند خود آویزان کرده بودیم دوباره یونیفرم های قبلی خود را پوشیده بودیم با توجه به سرما و راهپیمایی شبانه ای که در پیش داشتیم کاپشن های پنبه دوزی شده یه زمستانی را پوشیدیم و طبق معمول کلاه خود های خود را هم بر سر گذاشتیم ساعت بعد از ظهر همه در حیاتی که سخف شیشه ای داشت گرد آمدیم و پیش از آخرین رژه با هم رزمان خود و افراد بلژیکی اس اس که در مدرسه می خداحافظی کردیم. ودایی بود غیر معمول. در تاریکی کنار همدیگری استادیم، دست دادیم، جک گفتیم و در حالی که آسمان با نور قرمز موشک ها روشن می گفتگوی ما گهگا در سر و صدای انفجارهای خطوط جبه که چندان هم دور نبود، خفه میشد. در حالی که سربازان مشغول کندن سنگر و پناهگاه بودند، فریاد امر و نحی فرماندهان هم در سراسر ساختمان شنیده میشد. رژه در برابر افسری انجام شد که در تاریکی به زحمت توانستم او را ببینم. وقتی داشت از آلمان بزرگ و جاوید سخن می گفت ما آخرین تکه ساندویچمان را قورت دادیم. و زمانی که رژه را با مطمئن ساختن اجباری ما از پیروزی نهایی آلمان به پایان رساند، پیشگویی خش او را با آخرین جعه های قهوه داغ تایید کردیم. سرود ملی بارها با صرفه های مزاحم و آراغ های بچه ها که ظاهرا قهوه داغ بیخ گلویشان جهیده بود قهد می میشد. پس از پایان مراسم، سوتون ستون یک از خیابان جلوی امارت به طرف پایین راه افتادیم. افراد جوخه من دومین قسمت را تشکیل می دادند. قسمت اول را سرگرد و چند نفر سرباز هدایت می کرد. درجه هم مواظب بودند بقیه افراد هم به سرعت ما که در اول ستون قرار داشتیم حرکت کنند. من در جلو و فریدس شماره یک پشت سرم افراد جوخه را فرماندهی می کردیم. جاده ناجور بود و اغلب به هم تنه می و حرکت به سختی انجام میشد. شد. که در طول روز آنقدر آرام و خلوت بود، شپنگام به شکلی ناهموار و پر در درآمده بود. در حالی که در امتداد درختان کاج به راه خود ادامه می دادیم، بارها از کنار تانکها و نفربرهایی که با نور کم در حرکت بودند می گویی ارتش ارواح و اشباه بود که به سوی نیستی میرفت رفت. آفتاب روزهای قبل، گ جاده ها را سفت کرده بود اما به علت تاریکی گهگاه درون کانال های گدی که در اثر عبور تاننگ ایجاد شده بود میافتادیم. با این همه به مراتب راحتتر از مواقعی بودیم که افتان و خیزان از میان گلولایی میگذاشتیم سربازانی که سوار بر نفر برها از کنار ما میگذاشتند با صدای بلند ما را تشویق می کردندند بیخبر از آنکه از ستون بیانت از پسر بچه ها میگگذارند بعضی از آنها تعارف می کردند که سوار نفر بر آنها بشویم اما برای این کار اجازه افسر مسئول لازم بود و ما فقط با لبخندی از روی تأسف و با نگاه های مشتاق دنبال آنها حرکت میکردیم خمیده در زیر بار کوول پشتی های خود آهسته پیش میرفتیم و هوای سرد و پرسوز شب نمی گذاشت به خواب برویم گهگاه و سربازانی که مثل ما در تاریکی در حرکت بودند برمیخوردیم وقتی از آنها میپرسیدیم مقصدشان کجاست؟ پاسخ همیشه یکی بود. نمیدانستند به کجا می روند. وقتی صدای کودکانه ی ما را می شنیدند، دوباره نگاه ما می کردند و آثار تعجب در چهره هایشان دیده می شد. یکی از آنها گفت، آره جون خودشون ما پیوسته در حال فتح و پیروزی هستیم، اما حتی گارد ویژه را هم وارد کار زار کردند. با وجود خستگی همچنان پیش می رفتیم. تلو تلو می‌خوردیم، به زمین می افتادیم و دوباره به راه خود ادامه می‌دادیم. چند ساعتی نگذشته بود که با چشمان باز به خواب رفتیم، اما در همان حال هم بی اراده به جلو کشیده میشدیم. حرکت و صدای خودروهایی را که از کنارمان می‌گذشتند، حس نمی کردیم، و هیاهوی سربازانی را که روی آنها نشسته بودند، نمیشنیدیم. فقط گاه به گاه برای چند لحظه از خواب می پریدیم و همچنان به راه خود ادامه میدادیم. در آن لحظات به یاد سرباز آمریکایی افتادم اما این حادثه مربوط به زمان گذشته بود و ماجرای آن در پس قبار زمان رنگ باخته بود جایی در سر راه ایست دادند. دست کم چند نفر هم قبل از من ایستاده بودند من هم به طرف افرادم برگشتم و گفتم ایست همینجا استراحت می‌کنیم هیچ کدام از ما زحمت درآوردن کول پشتی رو به خود نداد همه مثل سنگ به زمین افتادیم و به خواب رفتیم چه مدت خوابیده بودم نمیدانم یک وقت دیدم کسی بازویی مراتکان میدهد آهسته چشمم را باز کردم نور خورشید از لابلای شاخه های انبوه درختان کاج راه باز میکردند پرندگان آواز سر داده بودند و جاده که در اثر عبور خودروها سخت پر از شیار شده بود در زیر نور خورشید خود نمایی میکرد همه جا خلوت بود نه یک آدم، نه یک خودرو، هیچ چیز دیده نمیشد. درختان جنگل سیاه دو طرف آن جاده متروک صف کشیده بود. شب قبل از اول مه به پایان رسیده بود. افراد جوخه بر من به خواب عمیق فرو رفته بودند. هیچ یگان دیگری غیر از ما آنجا نبود. به شارکوف که مرا از خواب بیدار کرده بود نگاه کردم. بقیه کجا هستند؟ با صدای نازک و ظریفش پاسخ داد. از کجا بدانم؟ آخه تو باید بدانی بقیه کجا هستند؟ بله باید بدانم ولی نمیدانم. دیشب موقع پیاده روی یکی به من گفت اینجا بایستید و قدری استراحت کنید. من فکر کردم سرگرد افسر فرمانده است. لابد افراد تو قدری جلوتر از بقیه بودند. در نتیجه دیگران ندونسته به راه خود ادامه دادند. من گفتم؟ ولی کسی که به تو گفت استراحت کنید سرگرد نبود چون در آن صورت خودش هم الان اینجا بود به حق با تو باشه اما من به اندازه خسته بودم که به شخصی که دستور میداد چندان توجهی نکردم نتوانستیم جلوی خندهمان را بگیریم از طرفی از این پیش آمد خوشحال هم بودیم دست کم آزادی عمل خود را به دست آورده بودیم حمله های هوایی به من آموخته بود که در شرایط بحرانی صلاح نیست که دست جمعی باشیم فرد اگر تنها باشد شانس زنده ماندنش بیشتر است. بقیه افراد هم از شنیدن این ماجرا خوشحال شدند. در حاشیه جنگل کنار جاده، صبحانه مختصری شامل چای سرد، یک تکه نان و خوردیم. بیشتر ما نقشه و قطر نما داشتیم، به همین خاطر برای بحث درباره موقعیت خود نوعی شورای جنگی تشکیل دادیم. حال که امکان تصمیم گیری فردی بود، دیگر علاقمندی برای رفتن به پرو ام، که با توجه به بیمارستان نظامی و نزدیکیش به مرز بلژیک ظاهرا جای خطرناکی به نظر میرسید نداشتیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که به کوخم در منطقه علیه شرق منطقه برویم و فکر کردیم که در آنجا شانس رسیدن به کوبلنز را خواهیم یافت. به خود گفتم از آنجا به خانه برگردم. نقشه مسیر جاده ها را نشان میداد. از طریق این ها می توانستیم بخشی از جنگل آیفل را میون بزنیم. و مقداری از وقت با ارزش ما را صرف کنیم. با محاسبه مسافتی که تا آن لحظه پیموده بودیم به این نتیجه رسیدیم که جاده مورد نظر باید چند کیلومتری جلوتر از جاده اصلی منشعب شود. خورشید حسابی گرممان کرده بود. پیش از شروع پیاد روی کاپشن‌های زمستانی خود را درآوردیم. طبق نقشه پس از یک ساعت راه پیمایی جاده‌ی باریکی به طرف راسمان شعب می‌شد. ما به ستون یک در طول جاده به راه افتادیم. متاسفانه خیلی از بچه‌ها از آزادی خود سوء استفاده می‌کردند. آنها برای خوردن توت در بیشه ها پراکنده می‌شدند و هر دوست داشتند می‌نشستند و به این ترتیب دردسر و ناراحتی بسیار و تأخیر غیر موجه به وجود می‌آوردند. به هر حال، هنگامی که باران شروع به باریدن کرد، اوضا عوض شد. ظرف یک ساعت، جاده صاف و نرم و سبز به صورت خمیر قهوه‌ای رنگی درآمد آمد که به سختی می توانستیم در آن قدم برداریم. از برزنت‌های زیرانداز به جای بارانی استفاده می‌کردیم. کلاه‌های پارچه‌ای را که کاملا خیز شدند برداشتیم و کلاخودهایمان را به سر گذاشتیم. ابرهای سیاه خبر از بارانی طولانی می‌دادند. ما در زیر باران از مسیری که زمانی جاده نامیده می‌شد، از فراز و نشیب‌های گوناگون می‌گذشتیم و به پیش می‌رفتیم و به دشت‌های پایین که پوشیده از ابرهای کم ارتفاع بود خیره می شدیم. دیگر نه می می‌خندیم و نه حرف میزدیم، حتی نقش و قطب نما را هم از یاد برده بودیم مدت ها بود که دیگر موجود زنده خانه و یا دهکده‌ای به چشم نمی دیدیم. برخلاف گذشته که روحی ماجراجو داشتیم در اثر رطوبت و سرما و سختی ها به صورت جماعتی سرماسده وحشت زده و گرسنه در آمده بودیم گروه ما در یک ستون 16 نفری با لباس نظامی و کوله‌بارهای سنگین پوشیده در برزنت و کلا خود به سر، از دور به مجموعه ارواح تاج بر سری میماند که تازه از مه و باران دره راین گریختند. پاییز 1944 کتاب و مقالات بسیاری درباره نوشته شد. اگرچه بعضی از آنها به راستی متعصب بودند، ولی بیشترشان تنها چیزی که نداشتند شجاعت بود. آنها دست به اعمالی زدند که همگی ناشی از ترس بود و دیگر این که راه گریزی نداشتند. کارنامه اعمال نازی ها نتیجه طبیعی شرایطی بود که به آنها تحمیل شده بود.